به سخن آمدن طفل در میان آتش و تحریز کردن خلق را در افتادن به آتش یک زنی با طفل آوردن جهود پیشان بود و آتشن در شعله بود طفل از او بستد در آتش در فگند زن بترسید و دل از ایمان بکند خواست تا او سجدارد پیش بود با این زدان تف اینیلم اموت اندرا ای مادر اینجا من خوشم گرچه در صورت میان آتشم چشم بند آتش از بهره جاب رحمت است این سر براورد زجیب اندرا مادر ببین برهان حق تا ببینی اشرت خاصان حق اندرا و آب بین آتش مثال از جهانی کاتش از دابش مثال اندرا اصرار ابراهیم بین کودر آتش شافت سر و یاسمین مرگ می دیدم جه زادن تو سخت خوفم بود افتادن تو چون بگادم رستم از زندان تنگ در جهان خوش هوای خوب رنگ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 که از طرف خود نیستم پروای تو اندر آب و دیگران را هم بخان که اندر آتش شاه بنهاده است خان اندر آیده مسلمانان همه غیر از بدین عذاب استان همه اندر آیده همه پروانه وارن در این بهر کدار قصد بهار بانگ می در میان آن گروه پر همی شد جان خلقان از شکوه خر خود را بعد از آن بیخیشتن میفکندندندر آتش مرد و زن بیموکل بی کشش از عشق دوست زان که شیرین کردن هر تلخ ازوست تا چنان شد کان اوانان خرق را من میکردند کردند در میاو آن یهودی شد سیهرو و خجل شد پشیمان زیم سبب بیمار دل کندر ایمان خلق آشقتر شدن در فنای جسم صادقتر شدن مکر شیطان هم در او پیچید شکر دیو هم خود را سیه شکر آن که نیمالید در روی کسان جمع شد در چهره آن ناکسان آن که می دردید جامعی خلق چست شد درید آن او ایشان درست